دوستان عزیز، به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. در این جلسه از بررسی کتاب مقدس بر روی مععزی در کتاب اعمال رسولان تمرکز خواهیم کرد. کلمه مععزه یعنی اعلام کردن و پولس داشت انجیل رو با قدرت در سر و سر دنیایی شناخته شدی اصر خودش اعلام می کرد. ما میتونیم چیزهای زیادی از مؤیزه اون یاد بگیریم حالا لطفاً به ما ملحق بشید تا به اتفاق مطالعه کتاب عمل رو ادامه بدیم دعا می‌کنم مؤیزه پولس با قلب شما حرف بزنه با هم گوش می‌کنیم می‌خوایم بررسی خودمون از مؤیزه پولس رو با این شرح از مؤیزش در شهر آتن یونان شروع کنیم پولس وقتی در آتن در انتظار سیلاس و تیموتائوس بود از اینکه شهر را اونطور پر از بت می‌دید عمیقا متأثر شد و به این دلیل در کنیسه با یهودیان و یکتا پرستان و هر روز در میدان شهر با ره به گفتگو می پرداخت. خدمت پولس در شهر آتن به این ترتیبی که در باب 17 کتاب اعمال رسولان اومده شرح داده شده. وقتی که به باب 17 کتاب اعمال رسولان می رسیم، چیزی در مورد معزه پولس رسول هست که میخوام بهش توجه کنید. اگه یادتون باشه در باب های، نخست کتاب اعمال رسولان که ما معزه پتروس رسول رو مورد بررسی قرار دادیم گفتم که معزه پتروس موعظه کتاب مقدسی بود موعظه حول محور مسیح بود موعظه حول محور انجیل بود و از اون معزه هایی بود که مردم رو ملزم می‌کرد پتروس همیشه معزه هاش رو به رأی عموم میگذاشت و به مردم میگفت که چیکار باید بکنن تا نجات یابند. حالا میخوام که به بررسی موعظه پولس رسول بپردازیم با به هفده کتاب اعمال رسولان یکی از بزرگترین مععزه های او رو زبط کرده که از اون به عنوان مععزه بالای تپه مریخ نام برده شده. لغت تپه مریخ در کتاب اعمال آریوپاگوس یا تپه آریس اومده که آریس یکی از خدایان یونان معادل خدای مریخ بوده. ما میخونیم که پولس به مرکز شهر آتن رفت و از اینکه که شهر اونطور خور از بت میدی دمیغان شد یکی از محققین گفته وقتی پولوس به شهر آتن رفت اونجا الهه ها رو خیلی راحت‌تر میتونست پیدا کنه تا آدم ها رو چون که بوت های زیادی در اون شهر قرار داشتن. آتن به شهر الهه ها معروف بود از اینکه پولس این همه بوت پرست رو اونجا میدید روحش منقلب شد چون میدونست که اون الهه ها یا بوت ها خدا نیستن و این مردم اسیر خرافات هستند اونها با بت به شناخت خدا نمیرسیدند. به عنوان خادمی بزرگ، قلب پولس منقلب شد. ما می‌خونیم که او سه کار انجام میداد. این سه کار بیانگر راهکارهای پولس هستند. اگه در جایی که می‌رفت کلیسایی بود، پولس اول به کنیسه میرفت و به علمای یهودی اعلام می کرد که عیسی همون مسیح یا مسیحای موعود بود. پولس یک عالم دینی بود و این اعتبار رو داشت که اون رو ثابت کنه. بنابراین او به کنیسه میرفت و اجازه می گرفت که صحبت کنه و تعلیم بده. بعد او برای غیر یهودیان از این بحث می کرد که ایسا همون مسیح یا مسیح های معود هست. این شگرد همیشگی پولس بود که اول به یهودیان و بعد برای یونانیان موعظه کنه. اگرچه خاندگی پولس این بود که برای غیر یهودیان خدمت کنه، اما او بار عظیمی برای قوم یهود داشت و همیشه ابتدا به سراغ یهودیان میرفت بعد از اون به کوچه و بازار میرفت و با کسانی که در اونجا بودن به مباحثه می پرداخت. گفته شده که آتنیها و غریبه هایی که در آتن بودند وقت خودشون رو تماما صرف گفت و در مورد چیزهای تازه میکردند. یونانی ها فیلسوف بودند. اونها عمیقا عاشق مباحثه و گفتگو در مباحث اقلانی بودند. مخصوصاً علاقمند بودند چیزهای تازه‌ای بشنوند. فیلسوفان عارف یا منکر وجود خدا میگن من نمیدونم. تو نمیدونی؟ هیچ کس دیگه هم نمیدونه. اما فکر کردن در مورد اون زیرکیه فیلسوفا در آتن دوست داشتند که در این مورد فکر کنند پولوس با این فیلسوفا در کوچه و بازار بحث و مجادله می کرد. او باید روی اونها تاثیر گذاشته باشه او همچنین با برخی رهبران سیاسی و با کسانی که رهبران اقتصادی بودند و کسانی که ثروتمند بودند هم بحث میکرد. وقتی پولوس خدمت خودش رو در شهر آتن شروع کرد شگرد و راهکار او باز هم همین بود او به کنیسه میرفت و در کوچه و بازار با فیلسوفا بحث می کرد و با رهبران اون محل بحث و گفتگو می کرد و بالاخره از پولس دعوت شد که به محلی که مجمع آریوپاگوس نام داشت بره آریوپاگوس محلی بود که از مردم برای بحث و گفتگو در اونجا دعوت می شد اون تقریبا مثل دادگاهی بود که مشرف به شهر آتن بود دعوت شدن به این مجمع برای گفتگو باعث اعتبار و احترام می میشد. پولوس به آریوپاگوس در بالای تپه مریخ میره و یکی از های بزرگ خودشو می میکنه. جنجال بزرگی بر سر این موعظه به پا میشه. اون یکی از هوشمندان ترین موعظه هاست. پولوس این طور شروع میکنه: ای مردم شهر آتن، من میدانم که شما در کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریک بین هستید. زیرا وقتی در شهر شما میگشتم و معبودهای شما رو مشاهده میکردم، به قربانگاهی رسیدم که بران نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته. من همان کسی را که شما میپرستیدم ما نمیشناسید به شما اعلام میکنم. این واقعا زیرکانه بود. چیزی که پولوس میگه اینه. من در اطراف شهر شما گشتم و متوجه شدم شما افراد مذهبی هستید. اما شما با وجودی که مذهبی هستید خدای زنده حقیقی رو نمیشناسید. بین مذهبی بودن و از نوع متولد شدن، و یا فردی روحانی بودن فرق هست. پولس مردم آتن رو با مذهبی بودن تعریف میکنه بعد او میگه شما خدایان زیادی دارید. وقتی که از بین خدایان شما عبور می کردم، یکی رو دیدم که این عبارت بر در معبدش نوشته شده بود. تقدیم به خدای ناشناخته. این به این معنیه که حداقل خدایی هست که شما نمی این همون خداییه که امروز قصد دارم دربارش با شما صحبت کنم. همون خدایی که براتون ناشناخته هست. این شروع بسیار زیرکانه بود بعد از اون پولس موعظه خارق العاده ای درباره این خدای ناشناخته میکنه و این واقعیت رو مطرح میکنه که خدایی که زمین و آسمون رو خلق کرده و ما رو خلق کرده و به عنوان فرزندانش قرار داده نمیتونه از طلا و نقره و سنگ ساخته بشه وقتی پولس این موعظه رو میکنه از اشعار خود اونها نقل میکنه چون حتی اشعار خود اونها هم میگفت ما فرزندان خدا هستیم و پولس نتیجه گیری میکنه که اگه ما فرزندان خدا هستیم خدا چطور میتونه طلا و نقره و سنگ و چوب و غیره باشه او از فلسفه های اونها نقل میکنه و در انتها صحبت رو به انجیل میکشونه و به مرگ و قیام عیسای مسیح اشاره میکنه اون دو واقعیت همیشه جز ارکان بشارت او بودن بعد میگه آنچه را که به من رسیده بود یعنی مهمترین حقایق انجیل رو به شما سپردم و آن این است مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته های انبیا مسیح برای گناهان ما مرد، مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. این بشارتی که پولس همیشه موعظه میکنه وقتی پولس درباره رستاخیز موعظه می‌کند، بعد از اون میخونیم وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، ادعای مسخره کردن ولی دی گفتن خوب. درباره این چیزها در فرصت دیگر به حرف‌های تو گوش خواهیم داد. جنجالی بر سر این معجزه پولس رسول وجود داره. ادعی هستند که میگن در شهر آتن پولس تمام اون فشار و اعتبار مجمع آریوپاگوس رو در هم شکست. فرهنگ هلنیستی فرهنگ بزرگی بود. اون بسیار بسیار اقلانی بود. فلاسفه و اندیشمندان بزرگ اکثرا یونانی بودند. وقتی پولس این معجزه رو در آریوپاگوس انجام داد، بعضیها بر این باورند که او فشار فرهنگ و مکتب اقلانی اونها رو با نقل از فلاسفه و شورای خودشون در هم شکست. وقتی پولوس معزش رو به پایان برد که در انتها به معزهی بشارتی تبدیل شد، نتایجش از نظر اونا چیز بود. پولس رسالهی برای آتنی ها ننوشته به نظر میرسه که حداقل درقل بنابه نوشته کتاب اعمال رسولان هیچ کلیسایی در آتن تحسیس نشد. از این رو بعضی از محققین میگن که پولس در آتن شکست خورد. بعد الدی از محققین هستند که میگن نه او شکست نخورد. کسانی بودند که ایمان آوردند و اینکه مثل عیسی پولس رسول هم نمیتونست شکست بخوره. ما نمیتونیم بگیم عیسی وقتی معجزه ای کرد شکست خورد. چون او خدا در جسم بود اما پولس خدا در جسم نبود. این توهین به مقدسات و یا کفر نیست که بگیم پولس میتونه شکست بخوره و یا میتونه اشتباه کرده باشه. هرچند من به شخصه معتقد نیستم که او شکست خورده باشه به هر حال او به خاطر تجربه آتن در مورد معزه یقینا رشد کرد کتاب اعمال به ما پیش زمینه ای از تمامی رسالات پولس میده که بعد از کتاب اعمال اونا رو بررسی خواهیم کرد یادتونه که در بررسی کتاب تاریخی عهد قدیم گفتیم که این کتاب به ما زمینه جهت درک کتاب های انبیا میدن همینطور گفتم که کتاب تاریخی به ما زمینه ای داد که بتونیم کتاب مزمور داوود رو درک کنیم همین اصل در مورد کتاب تاریخ عهد جدید هم صدق میکنه کتاب اعمال رسولان به ما زمینه تاریخی میده که بتونیم رسالات پولس رو درک کنیم خدمت پولس در آتن و قورنتوس همونطور که در باب 17 و 18 کتاب اعمال شرح داده شده مثال خوبی از این هست خیلی مهمه که اینو ملاحظه کنیم بر اساس کتاب اعمال پولس بلافاصله بعد از آتن به قرنتوس میره. در باب 18 کتاب اعمال گفته شده که بعد از گذشته مدتی از خدمت او در قرنتوس، پولوس تجربه پنتیکاستی دیگری در اونجا داشته. میتونید به این تجربه پنتیکاستی او در قرنتوس بگید. او پنتیکاستی در افسوس داشت، پنتیکاستی در فیلیپی داشت و اینجا در قرنتوس نیز تجربه پنتیکاستی دیگری داره. به این دلیل که گفتم تجربیات پنتیکاستی باعث تأسیس کلیساها میشد وقتی پولس خدمتش رو در قرنتوس شروع کرد خوابی دید یک شب خداوند در رویا به پولس گفت هیچ واهمه ای نداشته باش به تعالیم خود ادامه بده و دست از کار بر ندار زیرا من با تو هستم و هیچ کس قادر نخواهد بود به تو آزاری برساند و در این شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من میباشند این خیلی منو به حیجان میاره پولس میخواد که خدمت خودش رو در شهر بسیار فاسدی شروع کنه کلمه قورنتوس تقریباً مترادف کلمه ناسزا بود. اگه کسی خیلی فاسد بود به او میگفتن قرنتی و این حکم ناسزا رو داشت. وقتی پولس به شهر قورنتوس رفت، اونجا بسیار بسیار غیر روحانی بود. با این حال او رویایی از خدا میگیره که خدا میگه من با تو هستم و هیچ کس قادر نخواهد بود به تو آزاری برساند و در این شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من میباشند. اگر کتاب اعمال رو با اولین رساله پولس به قرنتیان مقایسه کنید خواهید فهمید که اونها به این ترتیب با هم ارتباط داشتن در چهار باب نخست قرنتیان پولس با کسانی صحبت میکنه که به او محبت داشتند پولس با ترین افراد مواجه بود این افراد یونانی بودند اونها ذکاوت او رو تحسین میکردند پولس سعی داره به اونها بگه که خدمتش در قرنتس که منجر به تبدیل اونها شد هیچ ربطی به هوش و ذکاوت او نداره برای اینکه بتونه اینو به اونها تفهیم کنه، و اونا میگه وقتی به قرنتس اومد تصمیم قطعی داشت که در بین اونها چیزی جز عیسی مسیح و مصلوب شدن او مطرح نکنه. پولس میگه تصمیم گرفته بود از کلمات حکیمانه فریبنده استفاده نکنه، بلکه فقط روح القدس و قدرت او رو به نمایش بذاره. وقتی پولس در آتن موعظه کرد، هرچند موعظه باشکوهی کرد، از کلمات حکیمانه بشری فریبنده استفاده کرد. او از شعرا و فلاسفه اونها نقل قول کرد. او معزهی زیرکانه کرد و نتیجهش بسیار ناچیز بود. او بحرانی بین خدمتش در آتن و خدمتش در قرنتوس داشت. خداوند به او ظاهر شد و گفت پولس، از کلمات حکیمانه و فریبنده انسانی استفاده نکن. فقط انجیل منو اعلام کن. کلمه معزه کردن عملا در زبان یونانی به معنی اعلام کردنه. در اون ایام اگر پادشاهی میخواست اعلامیه‌ای برای رعایاش صادر کنه کسی رو میفرستاد که بهش منادی یا جارچی میگفتند. این جارچی به دهکده های کوچک میرفت و در میدان دهکده تبل مینوخت تا اینکه مردم جمع بشن. بعد او اطلاعیه شاه رو باز میکرد و برای مردمی که جمع شده بودن میخواند و هیچ دفاعی از این اعلامیه نمیکرد و سعی نمیکرد با سخنانی منطقی اونو توجیه کنه. فقط اونو اعلام میکرد و بعد تومار رو میبست سوار اسبش میشد و به طرف روستای بعدی میرفت و در اونجا نیز اعلام میکرد. معنی کلمه معزه دقیقا همینه وقتی که پولوس درباره خدمت معزهش با ما صحبت میکنه اگر اول قرنتیان رو با داستانی که در اعمال در مورد آتن هست مقایسه کنید به نظر میرسه که پولس داره به ما میگه بین شهر آتن و قرنتس یک تجربه ای به دست آورده و توسط اون تجربه او رشد کرده. ماهیت اون تجربه اینه من اینو فهمیدم که مهم نیست من کی یا چی هستم مهم اینه که خدا کیه و چیه مهم نیست که من چیکار میتونم بکنم مهم اینه که خدا میتونه چیکار کنه مهم نیست که من چی میخوام مهم اینه که خدا چی میخواد اگه خدمت مسمره ثمر بود پولس نگاه میکرد و میگفت این کاری نبود که من کردم کاری بود که خدا کرد پولس فهمید که موعظه خدمتی روحانی هست و تنها کاری که او باید انجام میداد این بود که واقعیت آیات مربوط به عیسی مسیح رو اعلام کند او به رومیان گفت زیرا من از انجیل خجل نیستم از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد در شهر قورنتوس بود که پولس این حقیقت رو یاد گرفت من میدونم که بیلی این حقیقت رو در شهر آلتونا در پنسیلوانیا یاد گرفت اگه زندگی نامه او رو بخونید به شما میگه که سالها قبل در آلتونا جلسه ای داشته جلسه زیاد موفقیت آمیز نبوده و اونها اصلاً مسیح رو دریافت نکردند. ساعت سه صبح او داشت دعا می کرد که بدون چه اشکالی در این جلسه وجود داشته چیزی که خداوند بر او آشکار کردیم بود تو برای خودت معزه میکنی بیلی ما واعظین خیلی وقتا این کارو میکنیم ما برای خودمون معیظ میکنیم ما نمیخوایم یه چیز تکراری رو بارها و بارها بشنویم پس هر بار که معزه کمی بیشتر به عمق میریم، سعی می کمی بیشتر اونو جالبتر بکنیم و طولی نمیکشه که کسی نمیدونونه ما از چی داریم حرف میزنیم چون که واقعا ما برای خودمون معزه میکنیم. سعی می اساس انجیل رو برای خودمون جذاب بکنیم. بیلی هم بحرانی در آلتونا داشت که بیشه به بحران پولوس در آتن و قرنتوس نبوده. حتی امروزه وقتی شما معزه های رو اگه یک خادم باشید می که نشستید و به خودتون فکر او زود باش بیلی پس کی میخوای چیز تازه بگی کی میخوای بری سر اصل مطلب همه اینا واقعا ابتداییه و چیزی برای من خادم به عنوان واعظ نداره و در اون موقع است که بیلی گراهام از مردم دعوت میکنه و صدها نفر به جلو میان. چرا اینطوره به خاطر اینکه بیلی گراهام همون رمزی رو کشف کرد که پولس در شهر قرنطس کشف کرد بین شهر آتن و قرنطس پولس به این کشف بزرگ نائل شد کلمات فریبنده حکیمانه انسانی مهم نیستن مهم اعلام انجیل عیسی مسیحه وقتی شما انجیل عیسی مسیح رو با مسح روح القدس اعلام می‌کنید و مردم باور می‌کنند، اون خبر خوش خودش تبدیل به دینامیتی که کلمه یونانی برای نیروی محرکه خدا هست میشه و عملا تبدیل به نیرویی میشه که نجات رو در زندگی ها و ارمغان میاره. خب شما چی فکر می‌کنید؟ آیا شما دینامیت یا نیروی ی خدا رو در زندگی هاتون تجربه کردید؟ اون قدرتی که زندگی ها رو عوض میکنه و مردم رو از اسارت و بردگی گناه رها میکنه، امروزه در دسترس شماست. وقتی پولس موعظه کرد، کتاب مقدس میگه بعضی ها مسخره کردن، بعضی ها گفتند بازم میخوایم بشنویم و بعضی ایمان آوردن. بعد از تجربهش در قرنتوس، پولس دیگه اونطوری که قبلا در آتن موعظه کرده بود موعظه نکرد. از این مرحله به بعد او دوست داره داستان تبدیل خودش رو بگه دوست داره بگه که چطور با عیسی ملاقات کرد با مسیح قیام کرده در راه دمشق چطور با او مواجه شد و چطور این رویارویی تمام زندگی او رو عوض کرد با گفتن داستان شخصی خودش با خدا پولس دقیقاً پیام انجیل رو اعلام میکنه. پولس در انتهای اولین نامش به قرنتیان میگه میخوام باز هم انجیلی رو به یاد شما بیارم که وقتی نزدتون اومدم براتون موعظه کردم این چیزی بود که من موعظه کردم این چیزی بود که شما باور کردید این چیزیه که شما رو نجات داد این چیزیه که شما بهش تکیه کردید و اگه به چیز دیگه‌ای باور کنید اگه بر چیز دیگه‌ای تکیه کنید پس نجات نیافتید انجیل اینه بر اساس آیات عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد دفن شد و بعد از سه روز از مردگان برخاست این چیزی بود که من موعظه کردم زیرا که اول به شما سپردم آنچنی زیافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست و در دومین باب از اولین نامش به قرنتیان پولس به قرنتیان گفته وقتی از آتن نزد اونها اومده غالبا تصمیم گرفته که چیزی جز عیسی مسیح و مصلوب شدن و او با اونها مطرح نکنه در بررسی کتاب اعمال ما خدمت پولس رو در فیلیپی در باب 16 و آتن در باب هفده و قرنتوس در باب 18 ملاحظه کردیم و در باب 19 خدمت پولس در افسوس رو توضیح میده پولس خدمت عظیمی در افسوس داشته وقتی پولس در شهر افسوس خدمت میکرد اونجا پنتیکاست دیگری رو تجربه میکنه و حالا او خدمتش رو تا به آسیای سغیر گسترش میده وقتی پولس در باب 16 تصمیم گرفته به آسیا بره روح القدس مانع رفتن او به آسیا شد و او رو به جایی که امروز اروپا خونیم هدایت کرد. اما در باب 19 او به آسیا حرکت میکنه وقتی پولس وارد افسوس میشه به خدمت مسمر ثمر کلیس ها شروع میکنه محققین معتقدند کلیسایی که در افسوس تأسیس شد تبدیل به کلیسای مادر شد که کلیساهای دیگه از اونجا هدایت می میشدند مثلا کلیساهایی که در مکاشفه باب دو و سه به اونها اشاره شده پرگاموم تیاتیرا اسمیرنا یا ازمیر امروزی فیلادلفیا لاودیکیه ساردس همه اقمار کلیسای افسوس بودند یکی از دلایلی که کلیسای افسوس خیلی مسمر ثمر بود این بود که پولس در شهر افسوس سمیناری برگزار میکنه و ما میخونیم که پولس همه روز در تالار سخنرانی تیرانوس مجلس بحث برپا میکرد این برنامه به مدت دو سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمعی ساکنان استان آسیا ام از یهودی و یونانی پیام خداوند را شنیدند گفته شده که پولس رسول به مدت دو سال از ساعت 11 صبح تا پنج بعد از ظهر در تالار تیرانوس تعلیم می داده. زیادی برای اینکه چرا پولوس رسول از ساعت یازده تا پنج تعلیم می داده ذکر شده. در این منطقه حتی امروز هم استراحت بعد از ظهر جز فرهنگ اونها هست و به خاطر گرمای بیش از حد مردم صبح سر کار می رن و ظهر برمیگردند و بعد از ظهر مجددن کار شروع میشه و معمولا ساعت ده شب شام می خورن. حتی امروزه هم همون روش به خاطر گرمای نیمروزی ادامه داره و جز فرهنگ این منطقه محسوب میشه. وقتی پولس در افسوس بود به عنوان چادردوز مشغول به کار بود. علمای قدیمی اغلب حرفه‌ای داشتند. معلومه که پولس هم به عنوان عالم دینی حرفه چادردوزی رو فرا گرفته بود. به جز کلیسای فیلیپی، پولس از بقیه کلیساهایی که در اونها خدمت میکرد، حمایت مالی نمیشد. مخصوصاً از افراد غیر یهودی که به لحاظ روحانی به بلوغ نرسیده بودند هیچ چیزی دریافت نمی‌کرد. وقتی پولس در شهر افسوس بود، به جای دریافت حقوق از افسوسیان، چادردوزی می‌کرد. پولس احتمالاً زمانی میتونسته از تالار تیرانوس برای تعلیم استفاده کنه که دیگران از اون استفاده نمی‌کردند و در بین این ساعت‌ها به دلیل گرمای نیمروز تالار خالی بوده. مردی به نام اپافراس شبان کلیسای کولوسی بود. تیموتاوس همراه با پولوس بود و پولوس او را به عنوان شبان کلیسای افسوس تعیین کرد. میشه تصور کرد که مردان این چون اپافراس و تیموتاوس از شاگردان پولوس در مدرسه ی تیرانوس بودن. چون پولوس به مدت دو سال در مدرسه ی تیرانوس تا عالیم عمیقی داده بود، وقتی به افسوسیان نامه می‌نوشه، بارها و بارها به اونها میگه به خاطر داشته باشی. به خاطر داشته باشید. به خاطر داشته باشی او میگه تمام نصایح خدا رو در افسوس به اونها اعلام کرده پولس هیچ گروه از مردم رو به اندازه مردم افسوس تعلیم نداده بنابراین وقتی برای اونها نامه می مینویسه چیز تازه ای به اونها نمیگه و فقط میگه به خاطر داشته باشید که بهتون چه تعلیم دادم؟ یکی از تاثیرگذارترین چیزها در مورد پولس و خدمات او در انتهای باب 20 کتاب اعمال به چشم میخوره پولس در راه سفر به اورشلیم هست. او معتقده که روح القدس رو هدایت هدایت میکنه که به اورشلیم بره روح به او گفته که وقتی به اورشلیم برسه دستگیر خواهد شد و زندانی شده کتک خواهد خورد خیلی ها به پولس میگفتند که از روح القدس شنیدند که پولس در سفرش به اورشلیم با خطر مواجه خواهد شد و از این رو به او میگفتند که از رفتن به اورشلیم خودداری کنه. پولس به آنها میگه چی دارید میکنید با گریه و ناله کردن دل منو میشکنید؟ فکر میکنید روح القدس به من نگفته که وقتی وارد اورشلیم بشم چه چیزی در انتظار منه؟ پولوس در راه سفر به اورشلیم تماماً در اختیار روح القدس هست. وقتی به محلی به نام ملیتینی نزدیک افسوس میرسه میفهمه که دیگه هرگز به افسوس نزدیک نخواهد شد. او احتمالاً میدونه که از اورشلیم به روم خواهد رفت و بالاخره در روم شهید خواهد شد. او کسانی رو به دنبال مشایخ کلیسای اپسوس میفرسته و در ساحل میلیتینی نزدیک اپسوس با آنها ملاقات میکنه و خطابه خداحافظی خودش رو بیان میکنه که یکی از عالی ترین نمونه های بسیرت در زندگی و خدمات پولس رسول هست. وقتی با اونها صحبت میکنه و مسئولیت هایی را به آنها میسپاره قبل از هر چیز الگوهایی رو که به اونها داده به یادشون میاره. او میگه اکنون خاطر جمع هستم که هیچ از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت آمد داشتهام، دیگر روی مرا نخواهید دید. بنابراین امروز به شما میگویم اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم زیرا برای اعلام جمعی مقاصد الهی به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم. مواظب خود و مواظب آن گله باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده از پرورش دهید من میدانم که بعد از رفتن من گرگهای درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت سه سال روز و شب شما را تعلیم دادم و برای شما ریختم رسولان هم با گفتن و هم با سرمشق بودن خدمت می‌کردند اونها حقیقتی رو که می‌خواستن تعلیم دهند نشان میدادند بعد اون رو تعلیم میدادند پولس به اونها یادآوری می کنه که چه سرمشقی به اونها داده وقتی به سخنان پایانی میرسه میگه مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح القدس شما رو به نظارت اون برگزیده و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید او مسئولیت خطیری به عهده رهبران های افسوس میذاره و بعد به اونها میگه فراموش نکنید که چگونه دائما مدت سه سال روز و شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم این به شما دیدگاهی از موعظه پولس میده که او افسوسیان رو به چه چیزی هشدار میداد که شبان روز با اشک ها به اونها گفته بود پولس واقعا انجیل نجات و توبه رو موعظه میکرد پولس ایمان داشت که انجیل نجات میتونه شما را از هر راهی که منتهی به جهنم میشد نجات بده. پولس ایمان داشت که انجیل میتونه شما را از کاری که میکنید و از آنچه که هستید نجات بده. او مجازات ابدی رو با اشک ها می کرد. پولس به مدت سه سال تمام در شهر افسوس شبانه روز با اشک و آه به همه هشدار میداد. وقتی پولس به اونها میگه که اونها رو به طور عمومی و خانه به خانه تعلیم داده، منظورش این نبود که خانه به خانه میرفته اما اونها به صورت فردی تعلیم می داده. بلکه به همون کلیساهای خانگی اشاره میکنه که در اونجا تعلیم می داده. مثلا همون کلیسایی که در باب 16 دیدیم که در خانه لیدیه تشکیل شد وقتی او به فلیمون نامه نویسه به کلیسا اشاره میکنه که در خانه فلیمون تشکیل می شده. هشت جا در عهد جدید هست که پولس به کلیساهایی اشاره میکنه که در خانه افراد تشکیل میشده امروز نهضت عظیمی در جهان هست که اکثرا در کلیساهای خانگی مردم دور هم جمع میشن. یکی از وسیعترین کلیساها امروزه در سئول پایتخت کره جنوبی هست. اعضای کلیساهای سئول بیش از پانزده هزار نفر هستند. کلید کلیسا چیزی هست که بهش گروههای خانگی میگیم. نهزت کلیساهای خانگی چیزیه که این کلیسا رو در سئول نگه داشته. پیدایش این نهزت از زمانی شروع شد که شبان کلیسا خیلی بیمار شد و نمیتونست هر کاری رو به تنهایی انجام بده. از این رو مجبور شد مسئولیت شبانی رو بین چندین هزار نفر از مشایخ کلیسا تقسیم کنه. او چهارشنبه شب با 24 هزار نفر از مشایخ جمع میشه و راهکارهای طول هفته رو به اونها میده و اون مشایخ این راهکارها رو به کلیساهای کوچک خانگی انتقال میدن و بعد یک شنبه ها همه اونها در کلیساهای بزرگ دور هم جمع میشن. این الگویی از کلیساهای اولیه هست. منظور پولس دقیقا همینه وقتی میگه من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه تعلیم دادم منظورش دقیقا همینه این مشایخ کلیسای افسوس که پولس خطاب به اونها صحبت میکنه احتمالا همون شبانان کلیساهای خانگی هستن به نظر میاد کلیسا در افسوس به این صورت شکل گرفته سخنان پایانی پولس به مشایخ افسوس بسیار زیبا هستن او به اونها میگه خودتان می‌دانید که با این دست ها زحمت کشیدم و های خود و همراهانم را تأمین کرده‌ام. من عملاً به شما نشان دادم که ما باید اینطور زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نماییم و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود: دادن از گرفتن فرخنده تر است. ببینید پولوس در افسوس چادردوزی می‌کرد. او یک سکه هم از کسی نگرفت. هیچ کس نمی‌تونه او را متهم کنه که او چون می‌خواست از مردم پول و هدایا بگیره معایزه کرده او میگه با این دستها زحمت کشیدم و نیازمندی های خود و همراهانم را تأمین کردم پولس نه تنها نیازهای خودش را رفع میکرد بلکه نیازهای همراهانش را هم تأمین میکرد چون میخواست اونها حقیقت کلام عیسی را بفهمند که دادن از گرفتن فرخنده تر است این انگیزه ای هست برای کسانی که سخت زحمت میکشن اگه شما تلاش کنید و پول کسب کنید چیزی برای دادن دارید و میتونید یاد بگیرید که دادن از گرفتن فرخونده تر است ما میبینیم که او به مشایخ کلیسای افسوس میگه که دیگه او رو نخواهند دید و کتاب مقدس میگه همه با صدای بلند گریه میکردند و او رو در آغوش میگرفتند و میبوسیدند آنچه بیش از هر چیز آنان را غمگین میکرد این بود که پولس گفته بود دیگر آنها روی او را نخواهند دید اس او را تا کشتی بدرقه نمودم. این نه تنها چشمندازی زیبا از خدمات پولس رسوله بلکه نماد زیبایی از کوینونیا یا دوستی هست که در نسل اول کلیسه های عهد جدید وجود داشته. میخوام با این چالش پولس رسول درس امروز رو خاتمه بدم. اکنون شما رو به خدا و کلام فیض بخش او میسپارم. کلامی که قادر است شما را بنا کند و برکاتی را که میراس مقدسان او است به شما عطا فرمایم. دعا می کنم فیض خداوند بر شما قرار بگیره و شما رو بنا کنه. ببینم آیا شما فیض خدا رو در زندگیتون تجربه کردین؟ دعای پولس برای کسانی که براشون معزه می کرد این بود که فیض خدا بر اونها قرار بگیره و اونها رو بنا کنه. این دعای ما هم هست. وقتی به موعظه پولس گوش می کردید خدا در چه موردی با قلبتون صحبت کرد؟ اگه تا عیسی مسیح رو به عنوان ناجی و خداوندتون نپذیرفتید، دعا میکنم امروز روز نجاتتون باشه. و اگه قبلاً ایمان آوردید، دعا میکنم پیام پولوز و زندگی اون شما رو به چالش بکشه که در شهادتتون شجاعتر باشید. امیدواریم فیض خدا شما رو بنا کنه و از هر نظر به شما قوت بده. دعا کنیم که روح او به شما آرامش و جسارت بده تا پیام و فیض او رو به همه اعلام کنید.